سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست حقه من خوش آمدید در این قسمت در خصوص تمکین صحبت خواهیم کرد سوال شود که همسر ما منزل را ترک کرده است و هرچه با او تماس می‌گیریم که بر سر زندگی برگرد او بر نمی برنمی‌گردد به ما گفتن که بروید دعوای تمکین طرح کنید این یعنی چه ما اصلاً معنای آن را نمی‌دانیم که به ما گفتند این کلمه بدیم معناست که اگر خانوامی بدون هیچ دلیلی محل زندگی مشترک را ترک کند و آقا تمایل داشته باشد که ایشان برگردد اما هرچه حضوری رفته است یا تماس گرفته است پاسخی نشنیده است میتواند دادخواستی ثبت کند و عنوان درخواست این مرد هم می شود الزام زوجه به تمکین این دادخواست در دفتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت می شود در آناضر به دادگاه خانواده ارسال می شود. آنجا تعینی شبه می شود همانطور که قبلا گفتیم وقت رسگی به ما ابلاغ می شود و ما در آنجا حاضر می شویم حالا دادگاه بررسی می کند اگر دید واقعا خانم بدونش دلیلی محل زندگی مشترک رو تر کرده و همه چیز معیاس حکم به الزام این خانم به تمکیین می دهد یعنی باید این خانم به منزل مشترک برگردد. حته. اینکه گوی اوقات گفته می شود تمکین عام و تمکین خاص این ارتباطی به این توضیح ما ندارد و در این زمینه حتما باید به یک متخصص حقوق مراجعه شود تا بررسی آنچه که توضیح داده می شود بیان شود که معنای تمکین عام و تمکین خاص چه هست ما اینجا فقط توضیح دادیم که وقتی به ما میگویند دعوای تمکین در جایی که زوج منزل را بدون درید ترک کرده است چه معنایی می دهد